حکایت یکی از متعبدان در بیشه زندگانی کردی و برگ درختان خوردی، پادشاهی به حکم زیارت به نزدیک وی رفت و گفت، اگر مسلحت بینی به شهرندر برای تو مقامی بسازم که فراغ عبادت از این به دست دهد و دیگران هم به برکت انفاس شما، مستفید کردند و به صلاح اعمال شما ابتدا کنند زاهد را این سخن قبول نیامد و روی برتافت یکی از وزیران گفتش پاس خاطر ملک را روا باشد که چند روزی به شهرندراغی و کیفیت مکان معلوم کنی پس اگر صفای وقت عزیزان را از صحبت اغیار کدورتی باشد، اختیار باقی است. آوردند که آبد به شهرندر آمد و بستانسرای خاص ملک را به پرداختند. مقامی دلگشای روان آسای، گل سرخش چو آرز خوبان، سنبولش همچو زلف محبوبان، همچنان از نهی به برد عجوز، شیر ناخرد تفل دایه هنوز و افانین و علیها جل نارون به شجر الاخذر ملک در حال کنیزکی خوبرون پیش فرستاد از این مهپارهی ای آبد فریبی ملایک صورتی طاووس زیبی که بعد از دیدنش صورت نبندد وجود پارسایان را شکیبی همچنین در عقبش غلامی بدیع الجمال لطیف الاعتدال علکن که و حوله قتشن وه و ساق یرا ولا یسقا دیده از دیدنش نگشتی سی، همچنان که فرات مستسقا آبد تعامهای لذیذ خوردن گرفت و کسفتهای لطیف پوشیدن و از فواکه و مشموم و حلاوات تمتع یافتن و در جمال غلام و کنینزک نظر کردن و خردمندان گفتند ظلف خوبان زنجیر پای عقل است و دام مرغ زیرک در سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش مرق زیرک به حقیقت منم امروز و تو دامی فلجمله دولت وقت مجموع به روز زوال آمد چنون اینکه شاعر گوید هر که هست از فقیه و پیر و مرید و زبان آوران پاک نفس، چون به دنیای دون فرو داید، به اصل در بماند پای مگس. بار دیگر، ملک به دیدن او رقبت کرد، آبد را دید، از حیعت نخستین بگردیده، و سرخ و سپید برآمده و فربه شده و بر بالش دیبا تکیه زده. و غلام پری پیکر به مروههٔ تابوسی بالای سرایاستاده بر سلامت حالش شادمانی کرد و از هر دری سخن گفتند تا ملک به انجام سخن گفت چنین که من این هر دو طایفه را دوست دارم در جهان کس ندارد یکی علما و دیگر زهاد را وزیر فیلسوف جهان دیده حاضق که با او بود گفت ای خداوند. شرط دوستی آن است که با هر دو تایف نکولی کنی آلمان را زر بده تا دیگر بخوانند و زاهدان را چیزی مده تا زاهد بمانند. خاتون خوب صورت پاکیز روی را نقش و نگار و خاتم پیروزه گو مباش در بیش نیک سیرت پاکیز خوی را نان ربات و لغمه دریوزه گو مباش تا مرا هست و دیگرم باید گر نخوانند زاهدم شاید.